بحث مدیریت بشن وارد مهمترین بحث مدیریت البته مباعثی که تو مبانی سازمان ساختار سازمانی گفته میشه بعدا به صورت عمیقتر تکرار میشه مثلا مبحث برنامه ریزی نه همشا ولی خیلی بزن مبحث برنامه ریزی تو مدیریت استراتژیک باز میشه یا ساختاری که من خدمتون گفتم تو قسمت باز مدیریت استراتژیک باز میشه خب الان بحث هدایت رو ما داریم که تو بحث رفتار و سازمانی و مدیریت منابع انسانی این باز خیلی مبحث باز میشه. مبحث بعدی ما بحث هدایت، مهمترین مبحث مبانی سازم و ساختار سازمانی. خب هدایت یا گفتار چهارم به آخرین گفتار و یک گفتار بسیار مهمه. لیدینگ هدایت دوستان من خدمت شما عرض کردم که مدیر سه مشخصه داشته باشه درسته؟ چی بود مشخصه responsibility, مسئولیت وزیر آتوریتی حدود و پاور ما بحث سر ریسپانسیبلیتی و آتوریتی نداریم چون تمثل سازمان داده میشه بحث اصلیمون پاوره اوکی؟ و مرز موفقیت و شکست یک مدیر یک نفر در سازمان نه اتوریتی نه ریسپانسیبিলিتی پاور اگه شما مثلا ببینید یه نیروی سازمان خوب کار نمیکنه نه رقتی به اتوریتیش نمیگم رقتی نداره رقتی چندانی به اتوریتی و ریسپانسیبিলিتی نداره به پاوره بر برمیگرده به قدرت برمیگرده ما توی این مبحث میخوایم تمرین بکنیم یاد بگیریم که واقعا چجوری پاور در افراد میتونه بر بالا قدرت در افراد میتونه افزایش پیدا بکنه و چه روش هایی وجود داره برای کنترل پاور در افراد کنترل بکنید پاور رو قدرت رو کنترول بکنید و بتونید به نوعی افزایشش بدید ببینید هدایت یا دیریکتینگ عبارت است از فرایند دقیق کنید جمله رو عبارت است از فرایند سوق دادن منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی این تلاش از سه طریق صورت داده می رهبری، انگیزش و ارتباط یعنی ما در بحث هدایت سه تا کنسپ بود نظرمون رهبری، انگیزش و ارتباط مهمترین چیزی که یک مدیر در سطح سازمان درگیرشه الان تحقیقات نشون داده که هفتاد هشتاد درصد وقت مدیران درگیر بحث منابع انسانی درگیر بحث منابع انسانی خب؟ منابع انسانی مهمترین منبع در سطح یک سازمان و اگر یک سازمانی بخواد به اهداف خودش برسه باید human resource یعنی منابع انسانی رو کنترل بکنه و بتونه از منابع انسانی کار بکشه. کار کشیدن از منابع انسانی بحثی که اینجا وجود داره تو بحث دیرکتینگ. ما میگیم یک مدیر باید رهبر خوبی باشه. خب؟ دو مدیر باید انگیزه بدهد به پرسنلش و مدیر باید ارتباطات رو در سطح سازمان کنترل بکنه. خب؟ بریم دونه دونه مباحث رو باز کنیم ما پس شماره یه رهبری یعنی چی؟ خب؟ دو انگیزش یعنی چی و سه برقراری ارتباط محصر یعنی چی؟ هدایت یکی از کارکرت های اساسی مدیریت هست که پس از سازماندهی مطرح می و با سایر کارکرت های مدیریت در ارتباط است. ما در هدایت دنبال این هستیم چجوری بتونیم به صورت اثر بخش و کارا، از منابع انسانیمون کار بکشید یعنی منابع انسانیمون چه جوی اثر بخش و کارا میتوند در سازمان پلی رول کنند خب، بگیم سراغ بحث اول رهبری رهبری یعنی چی؟ یعنی چی رهبری؟ ببینید ما در فرایت مدیریت دو تا کانسپت داریم یه کانسپت رو مدیر داریم یک کانسپت رهبر داریم،, کانسپ داریم یه مفهوم مدیر، یه مفهوم رهبر و این مدیری است، مدیر که رهبری خوبی باشد این خیلی مهمه مدیری مدیر ما باید که نگرش رهبری قوی در سطح سازمان داشته باشه رهبری یعنی چی طرف تو چی از رهبری دقت کنید رهبری یا لیدرشپ عبارت هست از دقت کنید فرایند نفوذ در دیگران و تردیب آنها به تلاش مشتاقانه برای نیم به اهداف سازمانی یه موقع نیرو وارد دفتر شما میشه شما به عنوان مدیر میگه آقا برو کارو انجام بده درفت میگه اوکی بعد از دل دفتر که میره بیرون میگه ولش با مزخرف بود انجام میده ها ولی اعتقادی به حرف شما نداره اینو ما میگیم نگرش مدیریت ولی رهبری به گونه ای در افراد نفوز میکنه که افراد مشتاقانه حرفشو میپذیرن اصلا حال نمی طرف حرف بزنه متوجه هستیم؟ و حرف مدیر تو قلب و به قول من رو ذهن افراد میشینه و افراد مشتاقانه کار انجام میدن اینو ما میگه فرایند رهبری leadership خب؟ این کانسپت یکی از مهمترین کانسپت که در سازمان ها در رابطه باش بحث میشه شما از طریقا فرایند مدیر بودن مدیر بودن اینه آقا من میگم انجام بده چرا؟ تو من مدیرتم این یعنی مدیر بودن بگیر رحبری نفوز میکنه میدونی تو تعلیب و سهنه افراد برای که افراد کار انجام بدن بله آره ما در رهبری یک کانسپت بسیار مهمی رو که داریم نفوذ. ما میگیم رهبر موفق کسی است که بتونه نفوذ کنه. نفوذ بکنه در قلب و ذهن افراد. دقت بکنید. نفوذ یا اینفلوئنس عبارت است از اعمادی که مستقیم یا غیر مستقیم باعث تغییر در نظرات یا رفتار دیگران می شود. آن مهمترین نکته است. مدیر گایوواد اصلا لازم نیست بزنه. یه نگاه که میکنه میدونی چون احترام خیلی زیاده براش قاعده کارش میره جلو. خب چرا چون نفوذ خیلی قوی رو افراد داره. بعضی مواقع مدیران میبینی آقا خیلی انرژی میذارن، خیلی دستور میدن، سعی میکنن با فشار مالو ببرن جلو. ولی عملا اکسپتلنسشون یعنی درجه قبول شدنشون، مقبولیتشون توسط افراد در ست سال ما درجه پایینیه مال در رهبری دنبال این هستیم که مدیر چجوری نفوز بکنه اینفلوینس بکنه خب نکته بسیار مهم نفوز از قدرت، پاور نشأت میگیرد قدرت همارا توانایی مال نفوز بردیگر از ببارد قدرت و نفوز با هم در میخته هستن ما میگیم مدیر یعنی باید ریسپانسیبل باشه اتوریتی داشته باشه و power power یعنی نفوس بکنه یعنی یه کاری بکنه میدونی نیروی انسانی اتوماتیکلی هر چه مدیر دستی رو قبول بکنه بدون هیچ گونه مقاومت یه با حداقل مقاومت من خیلی پیش اومده با افراد که صحبت میکنم قبول میکنن. ولی از ته قبول نمیکنه از چهیده از میمیکای صورتشون از چشماشون قبول میکنن چون من مدیرشونم ولی قبول نمیکنن چون من بروشون نفوذ کرده باشم این خیلی مهمه چون با عنوان پدر که بچه دارید گای آقا هست ارتباط خیلی نستی که با بچه برقرار میکنید خب هر که میذاری رو دل ذهن بچه میشینه نفوذ داری رو بچه تون. وقت حرفی که میزنی که بچه انجام بده بچه انجام بده چون تو پدرشی و باید انجام بده ما در سازمان دنبال این هستیم که افراد واقعا قبول بکنن حرف مدیر بالدستی رو یعنی مدیر بالدستی بتونه تو ذهنو و قول من افراد نفوز کنه مهمترین نکته در رابطه با نفوز پاوره اگر شما پاور داشته باشید تو بس رهبری ما میگیم اگر شما پاور داشته باشین میتنین رو افراد نفوذ کنه. اگر پاور داشته باشید. حالا پاور چه چیزی به وجود میاد؟ منابع قدرت. این یعنی چه میگه باعث میشه اون تو سازمان بره بالا. چه عواملی؟ عامل شماره یک مرجعیت رفرنس پاور. مرجعیت یا دوست مدیر خودش فاندر سازمانه یعنی سازمان رو کرده متوجه از پایه از اسکرچ متوجه هستی و وقتی که خودش سازمان رو کرده و محسس سازمانه حالا هر کسی دیگه هم یعنی تو سازمان بیاد اتوماتیکی این فرق پاورش بالاست. چرا؟ چون قدرت مرجعیت داره ما میگین امام خمینی مؤسس انقلاب اسلامی بوده دیگه درست نه؟ حایبر قدرت مرجعیت داده دیگه نداره حالا شما 10 تا رهبرا 100 تا رئیس جمهور بیان ولی باز میگن بنیانگذار انقلاب اس گزار. ما میگیم در مالزی مات محمد بنیانگذار یک نگرشی در مالزی بوده گذار تغییرات و تحولات در مالیزی بوده مهاتیر محمد مهاتیر محمد هشت تا نخست وزیر بود و رفت الان هم پیر بازش از دست. ولی هنوز که هنوزه مهاتیر محمد حالا ده تا نخست وزیر دیگه بعد شما ولی مهاتیر محمد یه ذهنیت خاصی بود ذهن افراد داره، افراد یه حس خاصی دارن نسبت به مهاتیر محمد خب اینو ما بهش قدرت مرجعیت سازمانم همینه یه نفری که سازمان را تحسیس میکنه اوتومتیکلی کاملا به صورت اتوماتیک. خب قدرت مجایی گرد داره پاور شماره دو لیگال پاور قدرتی که از طریق قانون میاد نداریم چی دارم میگن؟ قدرتی که از طریق قانون میاد من ممارم در درامن شرکت بر اساسه. اساس اساسنامه شرکت یا اتولیتی دارم میگن درست آها مثلا حقوق بخواد پرداختش رو من باید انجام بدم. مثلاً پاداشی بخوام. اصلاً منابع مالی یا حقونه حقوق پاداش، اخراج، استخدام، همون اینا درسته نمیدید؟ بر اساس اساسنامه شرکت، خب من میتونم اصلاً کل پرسنل رو بریزم بیرون، پرسنل جدید بردارم بیارم. درسته؟ هیچ هیچ‌کدوم جا به منو نمیتونه بده. هیچ‌کدوم جا من نمیتونه بگیره. اینو بهش میگن قدرتی که از طریق قانون میاد. لیگال پاور. لیگال پاور حالا یه داستان رو برای تعریف کنم خنده دار مدیر تدارکات شیر کرد توی مخته با من به مشکل خود مخته که میگم رو دو ساله میشه ورداش نامه زد، به حیط مدیره که آقا این آقا ال و بله و جینبله خب و وقال محروف چیزم کرده بود اسپرید هم کرده بود تصریم توست وقال من تو آدمانم شایه به نوعی کرده بود تا آقا من این آقا را عوضش میکنم خب, خب نامه رفت از حیط مدیره بود من مثلا و من در جریان نده و حیط مدیره نسبت به نامه که ایشون زد ریاکشنهایی آره نشون داد و اکسال عملهایی رو نشون داد و و صداش کرد و تذکرم بهش دادن و و گفتن بهش تا آقا برو مشکلتو با مازندرانی خودت حل بکنه. من کاری باش نداشتن با که نامره زده بود یه روز صداش کردن دفترم به شما فلانی شما خیلی نراحتی من نامره بزرم از من نیستم من, من فقط سریع یک چیز نراحتم که تو به عنوان یک مدیری که تو سازمان داری کار میکنی قانون رو نمیشناسی این برای من خیلی زجراونتر و دردناکتره که یه مدیر من تحلیل محیطیش ضعیفه و یعنی چی؟ اون بابا پسر خوب قانون شرکته که هیت مدیره احمدی رو مثل من انتخاب میکنه به عنوان مدیرامل شرکت، مدیر اجرایی شرکت و برای من یک چارچوبی رو مشخص کرده چارچوبی که برای من مشخص کرده، آقا مسبقات هیت مدیره رو باید اجرا بکنی، متوجه از این حد خریده، تا این حد همین قیلی درستین همه شو ها تو بیتیم تو نمیتونی با من کار بکنی نمیتونی تو نابه رو بزنی ولی حیعت مدیره اصلا نمیتونی چون من خیلی راحت میتونم همه پرسنل هر جمعه خود و جنابالی بریزم بیرو نیروهای جدید بردارم بیارم اینو قانون به من میگه قانون حیعت مدیرگی در شرکت ها و سازمان ها میگه اینو ما میگه قدرتی که از طریق قانون میاد دارم میگم بله، شما تو شرکت سازمان ها چرا مدیر آمل و یه چیز دیگه مثلا حواستون هست چون میدون قدرت قانونی داره دیگه درست نه؟ میدونه قدرت قانونی داره ام. میتونه معنابه تخصیص بده، نده، خرید بکنه، نکنه، اخراج کنه، استخدام بکنه پاداش بدهد، پول بدهد، ندهد، اوکی؟ این رو بهش میگیم legal power یا قدرت قانونی قدرت سبم یعنی یکی از دیگه ای که باعث قدرت میشه تخصص تو کاره اوکی؟ شما الان توریدات شیرینی داریم تخصص داری توی کارت؟ بله چیه تخصصتون؟ فندیه فندنادی؟ بله ببینید هر کسی که ایشون تو سازمانش برداره بیاره متخصص فوق متخصص کارگر، کارمند، کارشناس، غیر کارشناس ایشون اکسپرت پاور داره خودش قناده یعنی فنون قنادی رو بلده اتوماتیکلی نفوذ داره رو افرادش رو افرادش میتونه نفوذ بکنه من سال 2007 تا 2010 رئیس دپارتمان تحصیلات تکمیلی دانشگاه لینکوپی در مالزی بودم خب رئیس دپارتمان بودم در دانشگاه ها معمولا نو اسای معمولا حالا چیز خیلی پیچیده نیست که من رئیس دپارتمان بودم معمولاً افراد آکادمیک افرادی که تو دانشگاه تدریس میکنن سعی میکنن از موارد اداری و ادمنستریشن دوری بکنن خب درگیر نمیکنن خودشونو میگن آقا مدرس استاد دانشگاهیم چه بدنم چی هستیم چی هستیم میایم سر کلاس دستمون میگیریم خودشونو درگیر کارهای اجرایی نمی‌کنن خب، حالا ما اگه خورستانمون درد می‌کرد و رئیس دانشگاه هم از من خوشش می‌اند پیشنها رو عقل سال 2007 تا 2010 متوجه هستید؟ و رئیس دپارتمان بودم خب، من رئیس دپارتمانی بودم که خودم تدریس می‌کردم می‌دانی چی دارم میگم، من دوتا سابجک از گذشته تا همین حدو هم ندارم مدیریت استراتیجی و استراتیستیکس آمار خب؟ این دو صاحب جفت که اصلی و اساسی که منش تدریس میکنم اون موقع همین دو تو ترس رو تدریس میکرم خب، وقتی که من مدرسم و توی علم کسب و کار تخصصی دارم متوجه ای به صورت اتوماتیک تأثیر میذارم رو پرسونلی که دارم با من کار میکرم تو اون دانشکده متوجه میگم بابا حالا فلانه خوب یا بد تو کاری که ما الان داریم انجام میدیم تخصص داره و ایکسپرد پاور یه قدرتیه که از تخصص و مهارت شما میاد متوجه هستید و این باعث میشه شما چون نفوذتون در افراد و شدناک بره بالا ایکسپرد پاور قدرت بعدی ریوارد پاور پاداش دو هرچقدر هر چقدر منابع مالی که در اختیار هر کسیه افزایش پیدا بکنه یا اصلا منابع مالی در اختیار یه نفر قرار بگیره قدرتش تو سازمان افزایش پیدا می‌کنه قدرتش و نفوزش در افراد افزایش پیدا می‌کنه افراد میدونن مثلا مدیر بالا دستشون پاداششون رو می‌تونه تایید کنه میتونه رد کنه اوکی، okay. خوریشه میتونه افزایش بده، میتونه کاهش بده، میتونه قرارداد ببنده، نبنده. این موارد مالی در سازمان به صورت اتوماتیک پاور افراد میبره بالا. اگر شما در رابطه با نفراتتون میخواید پاورشون افزایش بدید، منابع مالی رو در رابطه با این افراد باید افزایش بدید. منابع مالی باعث افزایش قدرت افراد در سطح سازمان میشه. خب؟ و آخرین قدرت یا منبع قدرت کوئرسی پاور یا اجباره خب که یهو مجبور تو یه شرکت کار کنی میدونی چی دارم میگم و چاره‌ای هم نداری چرا چون ممکنه کار دیگه ای نداشته باشی یا بر اساس شرایط تو اون سازمان مجبوری کار بکنی حالا حقوقش بالاتر شرایطش بهتره به صورت اتوماتیک قدرت مدیران در مقابل شما افزایش بدون کنید چون تو میخوایید اون سازمان کار کنید مجبورید اون سازمان کار کنید این حالش میگه power. زمانی که افراد مجبورن برای شما کار بکنن شما قدرتتون از طریق اجبار افزایش بدون خب پس ببینید ما یک دو سه چار پنج منبع برای قدرت داریم یعنی پنج منبع باعث افزایش قدرت مدیر میشه به تلا ها کدش تخصص. تخص جا میت تخصص دوستان شک نداشته باشید ذره که بین این پنجتا تافرent پاور و اکسپرت پاور مهمترین منابع قدر برای افراد یعنی هر چقدر شما اکسپرت پاور بالا باشه و قدرت مجریت بره بالا، حبیتاً قدرت در سازمان بیدام میکنید شک نکنید بزیار خوب حالا به من بگه تفاوت مدیریت با رهبری چیه؟ فرق مدیریت با رهبری استاد مدیر کسیه که از قوانین پیروی میکنه اما رهبر این که من پیش از شما منتن فرد مدیریت با رهبری رهبر کسیه که متفکر مدیر کسیه که از قوانین پیروی میکنه به نوعی مقلده ولی رهبر متفکر داره اختیار اختیارات بیشتری یکم هم شجاع و خلاقیت و نوآوری و از طریق همین اختیاراتش میتونه تو سازمان تاثیر کنه ولی مدیر تو چارچوب وظایف خودش عمل میکنه و وظایف رسمیش انجام میده که موجب محدودیت بشه دیگه، فعالان مدیریت با رهبری بگید بگید فرق مدیریت با رهبری لیدرشپ هم کارمندا رو هم هم هدایت و هم سخت برای رسیدن به چشم که سازمان داره انگیزه دادن الهام بخشیدن به کارکونا بعد ولی مدیر یه سری از کارمندا رو انجام میده که سازمان رو سازمان به طور عملی نگه داره مثل بودجه بندی برنامه‌ریزی حالا کارگزینی تختا تحم... تخمین عمل کرده و حل مشکلات استاد مدیریت اهدافش اه ازامان سازمانی ولی رهبری رحبر کسی که رهبری میکنه سازمانی اهدافش و اندعاز نفوذ و قوان و دستورات دستورات و قوانی دستورات رهبر در مقایسه با مدیر خیلی به معلومت بیشتر اهمیتش بیشتره و بهتر اجرا میکنه دیگه، فرق مدیر, فرق مدیر, فرق مدیر با رهبر رهبر رو با عشقا علاقه به مبالش یعنی انگیزه بوجود تایید ولی مدیر رو از روی تکلیف باش همکاری مدیران استاد همیشه کارکنان در اختیار دارن اما رهبران از طریق سبک فعالیت خودشون پیروانی رو به دست میارن خب من یه فایل بهتون نشون بدم فرق رهبری با مدیریت فرق رهبری با مدیریت خب مدیریت با رهبری چه فرق میکنه؟ سمت راست مدیریت سمت چپ رهبریه خب یه تفاوت کلی رهبر میگه let's گو مدیر میگه گو مدیر میگه برو حرکت کن راهبر میگه با هم حرکت کنید خب یک رهبر از لانگ رنج پرسپکتیو مدیر از short رنج پرسپکتیو راهبر بلند مدت نگاه میکنه یعنی 5 سال آینده سازمان نگاه میکنه 10 سال آینده سازمان نگاه میکنه مدیر short رنج پرسپکتیو مدیر کوتاه مدت به سازمان نگاه میکنه خب رهبر می‌پرسه اسکس وای and What رهمدیر می‌پرسه پلاس How and ون مدیر فقط همیشه دنبال ریشه است ریشه ی مشکل خب سوال میکنه چرا این اتفاق افتاد چجوری چگونه خب دنبال ریشه است که حلش کنه مدیر کاری نداره میگه بابا برنامه به من بدید این پروژه کی چه زمانی تحویل میشه میدونی چی دارم میگم رهبت میگه eye is the horizon مدیر eye the bottom line مدیر فقط سودو میبینه و درامدو مدیر فقط سود و درامدو میبینه رهبر خیلی چیزها رو در سطح سازمان رسد میکنه که میتونه منجز سود و درامدش فقط سود و درامدو نمیبینه رهبت originates مدیر imitates others رهبر. خلاق خلاقیت داره مدیر کاری که کاری رو انجام میده که باید انجام بشه متوجه هستی رهبر خلاقیت داره مدیر کاری رو انجام میده که باید انجام بشه خب رهبر the status رهبر challenge میکنه مبارزه میکنه با مشکلاتی که در سازمان وجود داره مدیر مشکلاتو میپذیره رهبر کار درست انجام میده خب مدیر کارها رو به صورت درست انجام میده. یعنی به عبارت دیگه رهبر از سربخشی رو دنبال میکنه و مدیر کار درسته؟ نکته بعدی رهبر دنبال تغییر و تحول در سطح سازمان سیکس چنج دنبال... تغییره مدیر سیکس کانتیونیتی مدیر دنبال استمرار کاره ولی رهبر دنبال تغییر و تحوره در سطح سازمان خب؟ دیده مدت داره پنج سال ده سال آینداره میبینه مدیر یک سال آینده دو سال آینداره میبینه رهبر همیشه علت مشکلات رو میپرسه و دنبال اینه که علت مشکلات رو پیدا کنه و حد کنه مدیر plans how and with مدیر کاری با علت مشکلات نداره میگه این کار تا این زمان باید انجام بشه متوجه استید رهبر eyes the horizon به موارد مختلف در سطح سازمان توجه میکنه مدیر eyes the bottom line مدیر فقط به باطم لاین که میگیم یعنی سود و درآمد به موارد کلیدی سود و درامت توجه میکنه خب؟ من دیم هر جالبه دکت کنید هشتا هشتا بخونید پاوریز پرسونال اینفلوینس رهبت قدرتش از نفوز شخصیش میاد، از نفوزش میاد حالا این نفوز برمیگرده به تخصصش، برمیگرده به referent powerش برمیگرده به ریوارد coercive، هر آن چیزی که من خدمت تو گفتم ولی مدیر پاورش از authorityش میاد power is based on position or authority مدیر قدرتش از authority یا پوزیشنش. میاد خب Demonstrates, demonstrates skill in persuasion رهبر تخصص و محارتشو به کار میبره تا تو افراد نفوذ کنه و افراد بتونن رو به جلو حرکت بکنن ولی مدیر demonstrate demonstrate skill in supervision مدیر فقط نظارت رو پرسنان این کار اجام شید یه خد کش تستش میگیده این کار بکن این کارو نکن این کار بکن متوجه هستی رهبر Watch to work رهبر، هدف هستش اینه که وفاداری پرسنل در سطح سازمان بره بالا خب، ولی مدیر Watch to employee complaints. ولی مدر دنبال اینه که افراد در سطح سازمان کارشون را انجام بده بیا آتا یه حقوق داریم میگه کارتو انجام بده دنبال لوینتیش نیست بله، رهبر plans استراتژی رهبر برنامه‌های کلان رو دوبار می‌کنه پیگیری استراتژی رو در سطح سازمان انجام میده و این مدیر plans tactics مدیر فقط می‌دونی مبارد خورد و برنامه‌های عملیاتی رو پیگیری میکنه در سطح سازبان مدیر چکار می‌مارسه؟ رهبر برنامه‌های کلان رو پیگیری میکنه مدیر های و این مدیر برنامه‌های خورد و عملکردی که در سطح ساز سازمان پیگیری میکنه. بله، مدیش معذرت میخوام رهبر ریلایز اور پرسن پرسپکتیو را که رهبر میگیره بر اساس نفوذی که رو افراد داره و بر اساس با قول معروف مشکلات واقعی رو که سازمان داره میاد تصمیم میگیره خب تا بتونه ریشه‌ای حل کنه مدیر بر اساس قانون و بر اساس تعارفی که در قانون شرکت شده میاد تصمیم گیرید متفقی شده این؟ برایت ساده‌تر رهبر اروژینیتر خلاقه مدیر یا قانون این میگه این کار باید انجام بشه خیلی ما صرف به یه خط مستقیم نیمیم عرض کردم خدمتون رحبر ده به موارد مختلف در سرک سازمان توجه میکنه ولی این مدیر eyes the فقط میگه سود و درامنده و بقیه هیچ کاری نداره مدیریت و رهبری گروهی رهبری را بخشی از نقش ها و مزایف مدیریت تلقی میکنند در حالی که گروه دیگر دامنه مفهوم رهبری را وسیع تر از مدیریت میدونن ایده و رهبری یک قسمتی از کاری مدیره بعضی میگن او با رهبری از یک فلسفه وجودی نسبت به مدیریت در سطح سازمان بله در هر دو رهبری و مدیریت فرایند نفوز بر کارکنان مطرح است لیکن در رهبری این نفوز افراد به طور ارادی و مشتاقانه بپذیرند این را اون جمله جمله درستیه ما در فرایند مدیریت و رحبری میگیم آقا در جوه فرایند و در افراد نفوز کنیم ولی در مدیریت افراد مجبورت بپذیرند ولی در رهبری مشتاقانه در حقیقت نظره حالا مدیر و بالا دستی رو می‌پذیرن بله، از بین منابع قدرت مدیر امدتر قدرت خود رو به واسطه‌ی قانون، مقام، پاداش به دست میاره در حالی که رهبر امدتاً از قدرت مرجعیت و کاریزماتیک بهرمنده من پنج منبع قدرت خدمت رو گفتم درست یا نه؟ قدرتی که کوئرسیف باشه قدرتی که پاداش باشه قدرتی که از طریق قانون و مقام به دست میاد این قدرت برمیگرده به استایل مدیریت ولی قدرتی که از تخصص و مهارت یا از طریق کاریزماتیک یا مرجعیت به دست میار. میشه در حقیقت مربوط به فرایند رهبری بله رهبر دنبال تغییر است ولی مدیر بیشتر برای برخورد با پیشیدیگی های سازمان رحمنی در رابطه با پیروان مفهومی آورد و مدیریت در رابطه با زیر دستان ما در فرایده مدیر میگیم تو کارمند منی و من مدیر تو هم ولی اگه من استعال رهبری رو کنم یا من رهبرم و تو پیروان منی. منی I am leader, you are followers من رهبرم تو پیروبی I am manager, you are my subordinate من مدیرم تو کارمند هم زیر دست ولی ما اگر در سازمان بخوایم بحث رو رو تمرین بکنیم دیگه فلسفه کارمندی و زیر دستی رو نداریم فلسفه فالوورز ها رو داریم یعنی پیروان رو در سطح سازمان داریم خب متوجه شده یک سوالی هست؟ سوال هست ببین من فکر بکنم این اینو جلسه اول خدمت شما یه اشاره کردم تئوری هرسی و بلانچارد دوباره این جلسه با هم یه ریویو این تئوری رو خواهیم داشت دقت بکنید حالا ما رهبری چجوری در سطح سازمان میتونیم داشته باشیم برید چجوری ما اگر مدیر هستیم چه عواملی باعث میشه یا چه عواملی دخيله که ما بتونیم یه رهبر خوبم باشیم یعنی ما رو بتونیم به سمت رهبری سخن بده ببینیم اقوام چیه دوستا وجود داره خصوصیات و صفات رهبری آها روی کرد خصوصیات و صفات رهبری ظاهر هوش ناف برخور تأثیر تاثیر روی طبال رهبری شما این یه روکرده یه روکرد روکرد رفتار رهبریه به نوع امون تهوریه هرسی و بلانچارته و یه روکرد روکرد رهبری اقتضاییه بریم بیمون داستان اینا چیه؟ روکرد شمایه یک روکرد خصوصیات و صفات رهبری به اساس این روکرد رهبران عبرمردانی هستن که به علت ویژگی هایی که محبت علایت شایسته رهبری گه‌دیجان اینو کرد میگه آقا رهبری اکتسابی نیست ذاتیه ها خب و اکتسابی بودنش حداقل خیلی سخته من اگه بخوام به قول معروف اینجوری نگاه بکنم بگم اکتسابی بودنش خیلی سخته داستانی که وجود داره میگه آقا رهبری رهبری موفق است که هوش بالایی داشته باشه دو بیان رساب سخن یعنی اگر مدیری بتونه خوب صحبت بکنه و بیان رسا و سخنوری خیلی خوبی داشته باشه رهبر خیلی خوبی هم داشته باشه شماره سه بلوغ فکری و وصعب نظری شماره چهار انگیزه محفقیت طلبی مدیری که دنبال محفقیت باشه میدین انگیزه داشته باشه طبیعتا رهبر خوبی هم هست خب بعدی شخصیت برونگره و انسانگره برونیز باشه و شخصیت انسانیش درست باشه آیتم بعدی خصوصیات ظاهری و فیزیکی نظیر قرد سیما و حرکات دست موقعی صحبت کردن چلا عامل شد؟ یک دو سه چهار پنج شیش دوستان من نمیگم هر شیشتا بلی خیلی از این عوامل مهمه. دقت بکنید من صبح که از خواب بلند میشم بی برو برگرد یک ساعت یک ساعت و نیم زمان میبری که حاضر بشم که میخوام برم سر کار اعتقاد دارم به این که من زمانی میتونم تو کارم خیلی موفق باشم متوجه هستی؟ که وقتی میخوام برم سر کار احنا که دارم میرم مهمونی شما صبح میخواد بری سر کار چه حسی دارید؟ دوباره شو روز شنبه خب وقتی که تو یه همچین حسی داشته باشی مسلما تاثیر میذاره راندمان خود و انگیزه خوده تو نمیتونی حالا اگر هم بخوای رهبر خیلی خوبی نمیتونی سرکار رهبر خیلی خوبی باشی ببینید حالا هوش بالا که ما ازش داریم صحبت میکنیم دقت کنید هوش ما یه IQ داریم یه ای داریم خب ثابت شده که EQ بسیار بسیار بسیار مهم‌تر است از IQ. EQ میشه هوش هیجانی. IQ میشه هوش شخصی. EQ است که باعث موفقیت یک فرد در نوعی تو کاری میشه. هوش هیجانی. فرد می‌دونی موفقیت طلب باشه. جاه طلب باشه. می‌دونی؟ فرد باید دوست داشته باشه تو کارش موفق باشه. دو. بیان رسا سخنبری شما که تو این کلاس هستی من اسس کردم ظرف 3 جلسه 4 جلسه اسلامه برای بعضی ازتون بیان رسا و سخنبری خیلی خوبی دارید یا حداقل رو دارید بعضی از شما ساکتید حالا نمیدونم یا سری کلاسه که ساکتید یا اصلا کلا آدم ساکتی هستید ولی یه مودی زمانی میتونه رهبر خیلی خوبی باشه که خوبم بتونه صحبت بکنه باره بلوغ فکری که اوکی یه چیز مشخصی میگیم باید داشته باشه انگیزه موفقیت طلبی خیلی مهمه شخصیت بولونریز ریز باشه مدیری میتونه رهبر خیلی خوبی باشه ریز باشه با نقطه مهم ظاهر نفر شما زمانی توی مدیر زمانی میتونی رهبر خیلی خوبی باشی که وقتی صبح میخوای بری سر کار انگار که داریم مهمونی این واقعیت دارم میگم بسیار بسیار بسیار تاثیر میزنه به ظاهر خودتون برسید متاسفانه ما ایرانیان یه نگرش بسیار بدی که داریم میگید این لباسا مخصوص مهمونیه این لباسا مخصوص کاره درسته؟ ولی اشتباست شما باید بهترین لباستون رو سر کار بپوشید این نوع حرکت ببینید آیتم یک دو سه چهار تن سخته ولی آیتم 6 که راحته که ظاهر خیلی تاثیر میذاره روی اینکه شما شخصیت رهبری داشته باشید خب مثلا شخصیت برونگرا منظور فیدبک مثبت دیگه نه ببین ما انسان ها به دو گروه تقسیم شده یا درونگران یا برونگرا انسان های درونگرا کسانی هستن که کم‌حسی میذارن تو خودشون کم حرف میزنن انسان های برونگرا زیاد حرف میزنن خودشون نگنداره مطر میکن شما اکثر مدیرایی که دیدم چیزای مثبت رو هم میشه برونگرایی میکنن یعنی فقط مثبت و منتقل میکنن یعنی چیه چیزهای مثبت اون یعنی توی یه محیط یه حالا پروژه یا هر جای دیگه ای سعی میکنن منفیاش رو منتقل نکنن برونگرایی س اعتقاد نه شما شخصت برونگر آد داشته باشید چه منفی چه مثبت ؟ ما میگیم مدیر تو محیط کار را باش شفاف باشه ها؟ به ورشد اگر اگه خوب کار آبادیام فقط اصلاً فرق رو میگه اتفاقا من زیاد معنیار شما نیستم خیلی از مدیرانی که من میشناسم نفر کار خوب انجام بده نمیگن تا کارو باید انجام داده شد خب آره میگن مال من یه اعتقاد دارم میگم مدیر بعد برو باشه من در رابطه با نفرت کار خوب انجام میدم میگم ولدن آفرین، دست در نکن کارو باد انجام دادم میگم زدی خب دقیقت این رو میشونم برونگرایی و تاثیر بسیار زیادی رفوت شما روی افراد داره هیچ چیزی تو سال من هیچ چیزی مهمتر از شفافیت مدیر نیست خیلی مهمه مدیر باید شفاف باشه نپیچونی نیره انسانی رو ما یه بسی تو برونگرایی داریم میگیم ها مدیر باید شفاف باشه فیلی کلیه وضایه رو بگیر خب رویکرد دوبار، رویکرد رفتار رهبریه این رویکرد دقیقا رویکرد هرسی و بلانچارته درست یا بر اساس تئوری هرسی و بلانچارت نیرو نیروهای سازمان به چند گروه تقسیم میشه؟ چه چیه اون چهار گروه؟ با یه با دیگه نه اینو میگیسم، هرسی و تهوری هرسی به بلانچارت درسته؟ ما میگیم افراد در سطح سازمان به چهار گروه تقسیم میشن درسته؟ ده. افراد یا اس یک یا اس یا اس یا؟ اس چه افرادی هستم؟ yeah. yeah. yeah. no من no با انگیزه ناتوان اس نا پی علاقه بی بیانگیز. انگیزه توانا اس شو علاقه با انگیزه توانا ببینید تئوری ال سلاب میگه اگر افراد از گروه اول هستن شما رفتارتون رفتار دستوری. تلین باید باشه یعنی دستوری خب افراد گروه سوم سلین باید باشه یعنی سبک پدرانه متوجه هستیم گروه گروه سومو سبکی رو که شما میری جانا سبته پارتیسیپیتینگه یعنی مشارکتی مشاری. و گروه چهار را یعنی چی؟ تخفیزیم دوستان اگر افراد بیانگیزه و بیالامه هستن تو سالمانه رفتاره و رفتاره دستوری و آمرانه باشه خب یعنی استایلی رو که اینجا بیری جلوه استایله مدیریتیه درسته؟ ولی اگر افراد با انگیزه ولی ناتبانن اینجا باید سبک پدرانه متقاعد کننده به نوعی که بتونی توانمندشون در سطح سازمان ببری بالا به نوعی سبک اینجا باید سبک رهبری باشه متوجه هستی؟ اگر افراد بی انگیزه بلی توانه هستن توانه هستن ولی بی انگیزن خب اینجا باید مشارکته یعنی در گروه های کاری تیم های کاری جونت بشی باشون و بتونی روشون نفوذ بکنی این باز میشه سبک رهبری و اگر افراد با انگیزه و توانه هستن هم انگیزه داره هم سبک با سبک تقفیز اختیاری باشه این سبک هم با سبک رهبریه دوست عزیزون شما که از من پرسیده آقا کدوم سال در سطح سال ما خوبه جفتش بستگی به این داره شما با چه گروهی داری کار میکنی اگه با گروه سی اکش داری کار میکنیم باید مدیریتی به ولی استو استو نه سبک ره بره باشه میشه لا یا متقاعد کننده میتونه مشارکتی میتونه ترکیب اختیاری که این برای اس که این برای اس این برای اس سه و این برای اس چهار متوفر شد؟ شو بریم رو کارت دوم نوchart رهبری اختزای خیلی جالبه. خیلی جالبه روی کادر رهبری اختزایی. اینو chart. میگه برای اینکه تو رهبر موفقی باشی، رهبر موفقی باشی. خب؟ یا بر اساس این روکت رهبری تابعی است از ویژگی های رفتری و شخصیتی رهبر خب و میزان توان و تمایل پیروبان توجه می و عوامل مربوط به موقعیت و شرایط دقت کنید رو رهبری اقتضایی خب اقتضایی یا تیوری تئوری اقتضایی چی میگه؟ میگه سه عامل رو رهبری میکنم تأثیر بذارن سه عامل خوب؟ آمه شماره یک شخصیت و رفتار رهبر بعد ما در روی کرده اول هم گفتیم شخصیت رهبر رفتارش ظاهرش میتونه برای که یه رفتار در سطح سازمان باشه تحصیل بذاره درسته؟ این آمان شماله یک آمان شماره دو تمایون پیروان خیلی جالبه خامویول پیروان من دوره ام بیه. یه درسی داشتم به نام رفتار سازمانی اورگانایزیشنال بیهیویر خب آقا ما از زمانی که وارد دانشگاه شدیم خب هی hey, همکلاسی‌هایی که قدیم یعنی دانش‌پذیرای دانشیان سینیور قدیمی می رفتار سازمانی چقدر درس عجب استادی داره آه استاد به آمریکایی بود پروفسور آناتور آقا آه گفتیم آقا یه پیره مرده مثلا هفتاد و فنیز ساله اشتاد ساله یعنی من واقعیت عمرش تشنه این بودم که برم سر کلاس یک ای بشینم اینقدر تعریف کرده بودم ببینم چه این داستان چی آقا تو سر کلاسش فهره میدفت دار رو درس میداد. یعنی چاره ای نداشتی فکرسازه دانشگارا میبینه فقط یه استاد یه درس داره درس میده رفتیم خب سابجکت ها در دوره فوق لیسانس 42 ساعته یعنی 14 جلسه 3 ساعته است این شروع کج در از من زمانی که مثلا دوره ام بی ای خوندم آیلتس 8 داشتم آیلتس آکادمیک 8 زبانم خیلی خوب بود حالا الان شده خود افت کرده ایش صحبت کرد من هیچی نفهمیدم چه معنی هیچی هیچ هیچی من نمی‌فندم که هفت می‌زد، من هیچی نمی‌فندم یه جزوه داره 500 صفحه یعنی کتابه، مثلا وقتدارسازوانی 300 صفحه، 250 صفحه، جزوه می 500 صفحه خب، ما رفتیم جزوه رو کپی گرفتیم و ما خریدیم، خریدنگی هم تو دانش کرده جزوه رو من باز کردم، دیدم دستنمشده‌های خودشه، شا... یعنی تایپ هم نشده بود خب، پای تخته می‌نوش و هیچی نم خوب چه می‌دونم؟ دیدید دی انگلیسی را چیز می‌نمیسم به صورت لاتینی تپسال لتر می‌نمیسم خب به صورت په ایچی من نمی‌فهمیدن بعد خب سر کلاس بودن دیگه مثلا دانشجوی فرس‌لنگویج هم بود مثلا استرالیایی انگلیسی حالا من رومم نمیشون از اینا بارم بپرسم با شما چیزی فهمیدین؟ نه فهمیدی؟ ولی درم همه خیلی مشتاقم هم. خیلی علاقه‌لند خب سوال می بحث می کنن ولی من هیچ چی نمی فهمم هیچ شو رسید به امتحان میانته خب از 500 صفحه جزوه ایشون 600 صفحهش درسه بود 7 جلسه 300 صفحه درس داده بایی هم می‌گفتم باید پر بزر آن افتر آن عجب استادیه استادی. <تصفيق> من یعنی واقعا دپریس شده بودم دپریس شده بودم، من کنتم اینجوریه؟ چرا بقیه می‌فهمن؟ و من نمی‌فهمن؟ خب؟ پسیلی منتار میانته، این 300 صفحه از کتاب درست داده بود و من هیچی بلد نبودم یعنی بگوی یک لوگت بگوی یک لوگت، بلد نمودم بیس روز مونده زمان اعلام کرده بود بعد من رفتم هیستوریم این رو در با استاد فوق بلاده کل خر سختگیر خب که مثلا اگر شما یه لغت رو میبرون و بر بنویزی اصلا یه لغت و گفته که امریکایی هم بود خب فرستانگویش بود هر شعر رو بعد نمتونه امتحان بنویزی خیلی قفی بنویسی. دیگه هیچ چاره ای نداره مگر که من کشینم 20 سفر سفارشی فکسش کنم. بشیرم فکس کنم. دوستان من 20 روز خودم رو در یک اتاق حبس کردم. یه اتاقه بگم مثلا دو در سه. 20 روز. یعنی این یکی از زیباترین و بدترین خاطرات زندگی من من 250 صفحه 300 صفحه کتابشون ایشون کردم. لغت به لغت. حفظیات من خیلی بد یعنی بی اگه بیفتم پیگیرش بشم خیلی خلیشتونم حفظ کنم باور توش ساده تره حفظ کردنش از این چیزی که من حفظ کردم لقط به لقط و سر امتحان نوشتیم ما آمدم گروه دیگه چی برات نمودم یا همهش خالی شده بود خب؟ بقیشن یه ریستیت شده بود مغزم بعد این کتابش رو انتقال دادم دیگه به برگه امتحان این کتاب هم آمریکا امریکا رفتش بلا یک ماه یک ماهانی برگشت برگشت و برگاهه انتحانی رو آورست در کلاس که آن مثلا توضیح بودم بعد من کیستوریش هم در رو ایشون بودم در 25 سال تدریسش بالاترین نمره‌ای که مثلا تو میانترم ازش گرفته بودم سی نمره داشت میانترمش مثلا 17 سی بود، 16 سی، اینجوری مثلا اون که 17 سی گرفته دیگه مثلا خیلی top student من سر کلاس رو یه نگاه کرد پیرم بود هفتاد و پنیز و هشتا سالش بابیمونم زنده باشه، موده باشه چیز بگه داستانش او یه شمال و دو چیه؟ من بودم، باه نه که من همیشه سر کلاس ساکت بود چوی چی نیفردانده؟ کلاس بود. توی؟ آره. من برگه میانچه از سی گرفتنم بیست و <تصال> <تصال> <مقصر> آره،, آره، یه همیش چیزی آره یه مثلا جواب ساده بود اینا گفت من تو چههه سال تدریسم تا حالا کسی مثلا نمره بالاتر شونزده من تو چجوری دوست دو ناحتا کجایی تو؟ من هستم. از اونجا نگریشش به ایرانی عوض شد فکر ایرانی خیلی با خوشن لطه ایرانی یعنی راه هایی میدونی دو در بازه تو اصلا فانتاسیکه دیگه, دیگه تو سر نشسته بود ایرانی ها چه بدونه پاپ استودنت ها فانتاسیکن باوشن بعد دانشجوهای بعدی که می اومدن و رفتاره سازمانی داشتن ایرانی هم بودن یا سنی نکته میذاره ایرانی ها یعنی بود دیگه مستقیما نمیگن نمیگن آره پچمو بردیم بالا <تصفيق> حالا این داستانو تعریف کردم برسم به این نکته امتحان فاینال هم ما با گری A+ ازشو گذراندیم ما هیچ رفتار سازمانی رو نمیدونستیم ولی کلاس گیرتم ازش. من هیچ‌چی نمی‌دونستم. یعنی اگه از من می‌پرسیدی آقا پنج دقیقه در رفتار سازمانی صبح که من نمی‌تونستم صحبت کنم. فوق لیسانس گرفتم. بوره دو به دوره دکترا شدم. دانشجو دکترا بودم گفتم بابا این رفتار سازمانی رو بالاخره منم اجاز بگیرم. همش که تو دکترای مدیریت دادن اینو. من رفتار سازمانی بلد تموشم. گفتم برم بشینم سر کلاس این بعنوان ادمنس. اون وقتی که صرفا گوش بده یه تم قامه خدمت شماها در جلسه اول رفتم با هیچ چی نفهمیدم جلسه دوم هیچ چی نفر جلسه سوم خوش من از کلاس کرد میگه بو چرا یه سر کلاس من. تو که نمره بالا گرفتی خب این یاسر رو برای چی من برای شما تعریف کردم و جالب اینه که تو اون مقطع همه میگفتن با پروفسور ماناتو اون عجب استادی دور فول ساس من نفهمیدم ولی وقتی دانشو دکترا شدم و ارتباطات بیشتر و قوی‌تر و افراد میشناختیم دو افتاد کشی هیچ کس در کلاس نمی‌فهمیشون چی می‌گید؟ ها؟ نه <تصفح> فقط من، باور تو توست کردم، هیچ چی ولی همه می‌گفتن عجب استادی، ها؟ این حسیه که متاسفانه نمیگم متاسفانه اصلا تو بحث، ما تو بحث رهبری اختزای دقیقا این داستان رو داریم میگیم تمایل پیروان یعنی هلسی که پیروان نسبت به مدیره که اون رهبر یا اون کسی که باهاش آش دارن میان من خیلی از سمینارها رو تو ایران شرکت کردم سخنانه که خودم به عنوان واقعیت همش در ایران متاسفانه تا الانی که من دارم با شما صحبت میکنم شاید دو تا سمینار اساتید دیگر رو تو سخنانه دارم در ایران میکنم رو رفتم نشستم گوش کردم زیاد به تحقیقات علمی در ایران اعتماد ندارم. ضعیفه. ایران از نظر علم آکادمیک ضعیفه. خب؟ خیلی هم سخت میگیرن مثلا وزارت علومه خیلی سخت من ولی ضعیفه. زیر ساختش مشکل داره. بعضی از اساتیدی که خیلی هم مثلا well معروف، مشهورن، خب و بعضی از سخنرانی هم میکنن مثلا در سطح رنکینگ‌های خیلی بالا هم میگیرن، هم دست می سوق میذارن. خب بلکه من دقت میکنم به صحبت های اینا میبینم که شکون پایه و اساس اکدیمیک نداره یعنی, یعنی رو هوا خب؟ ولی همه میرن لذت هم میبرن متوجه و نمره بالا میدن اینو ما بهش میگیم تمایل پیروان پروفزور آناتورامان همه میگفتن استاد خوبیه قویه و دانشپذیر بلکه می از سر کلاس میشه است. میگه عجب استادی حالا اگه نمیفهمم مشکل از منه ولی من استاد خوبیه میدونید اینو بهش میگی ما تمایل پیروان یا فالوور اکسپتنس camo که فالوور ها دارن جهت قبول کردن مدیر بالا دستی هر چقدر شما اعتقاد بیشتری به شما داشته باشن قبول داشته باشن شما در حقیقت درجه رهبریتون افزایش پیدا می‌کنه جلسه آخره من یه نکتر خدمتون بگم تو کلاس ها که من برای تدریس میرم البته خوب خواهشن این جایتی که من به شما دارم میگم مدرسین یه سری تکنیک های رو باید بلد باشن و بدونن جهتی جذب کردن فالوبراشون یعنی اون کسایی که سری کلاس هستن و جلسته اول بسیار مهمه متوجه ای؟ حالا من نمیخوام بگم ولی قطع کنه بیدیم جلسه اول من چیکار کردم من یک کارهایی رو جلسات اول تو کلاس انجام میدم مثلا همیشون جلسه اول تو کلاس من با کلوبات امکان نداره بدون کلوبات مثلا این فرمال بیان سر کلاس میدونی اینا تاثیر میذاره روی که یه دید مصبتی پیدا بکنن ما وقتی که میدیم تمایل پیروان یعنی دید مثبت. و این تاثیر میذاره روی موفقیت رهبر. که و عامل شماره 3 شرایط و محیط شرایط و محیط شرایطم تحصیل میذاره یعنی چی یه بوقه هست شما مدیر یه سازمانی هستی که شیش ماه سابقه کار داری متوجه هستی یه موقع از مدیر سازمانی هستی پنج سال مدیر سازمانی توجه میکنی هرچقدر سابقه کار شما طولانیتر تو سازمان بشه تأثیر بیشتری رو رحبری شما میذاره من روز اولی که مدیر حامل شرکت شده اصلا کسی عکس با بابا, بابا این مدت اومدیه یه دواری بزنه و بینده. ولی وقتی این زمان شد دو سال شد سه سال شد چهار سال این شرایط دیگه تحصیل گذاره رو اینکه در حقیقت چقدر نیروها شما را قبول داشته باشن اگر شما مدیر یک سازمان صده باشید تا که مدیر یک سازمان زرده باشید تحصیل، یعنی مدیر سازمان سودده، این حالت و این شرایط تحصیل بیشتری میذاره روی موفقیت رهبری شما متوجه منظر من هستیم؟ خب پس ببینید براساس این رو کرد پس رحبری تابعیست از ویژگاه رفتی و شخصیت مدیران، مذاری هم رحبر میزان توان و تمایل پیروان و عوامل مربوط به موقعیت و شرایط بله در نهایت آقای فیدلر یه تئوری دیگر رو مطرح کرد فیدلر فیدلر میگه نوع رابطه رهبر و پیروان محصی که داره میگه عوامل محوامل موقعیت و شرط رحبری از اینگاه فیدل میگه سه آمه تأثیر گذاره جد موفقیت یک رهبر ارتباط رهبر و پیروان ارتباط یعنی چی؟ شما الان برابر زادن تا سر کار مسلمت تاثیر بیشتری رو داری چون ارتباطتون فرق میکنه میدونی چی دارم میگم؟ یه موقع من شما رو استخدام میکنم برای سازمان خب ولی شما که در سازمان من داره کار توسط یکی دیگه استخدام شدی. خب، رابطه شما با من متفاوت تره تا رابطه من با شما و من تأثیر بیشتری رو شما میذارم چون شما رو من جذب کردم خب؟ بله ساختار سازمانی و شرح وضایه تأثیر مستقیمی میذاره رو موفقیت یک رهبر خب؟ و در نهایت میزان قدرت رهبر یعنی پاور پاوری که یه رهبر داره می‌تونه خیلی تأثیر بذاره در حقیقت روی محفظیت و روی نفوذش. اوکی؟ ساختار سازمانی، شرح وضایب، چارک سازمانی اینکه که سازمان سیکوینس داشته باشه، ارتباطات بین وائدها و قلائدها موشن فرس باشه اصل اتوماتیکلی. شما به عنوان یک مدیر می‌تونه احمر محفظ باشه بر اساس دیدگاه آقای فیدلر خب می‌بینیم مواردو پس ببینید بر اساس با تفاوت مدیریت و رهبری رو در ساعت سازمان گفتیم گفتیم مدیری میتونه موفق باشه که نگرشه رهبری داشته باشه و برای اینکه شما نگرشه رهبری داشته باشه باید پاور داشته باشه بهترین پاور پاور مرجعیت و تخصص درسته مرجعیت و تخصصه خب و روی کردهای عمده در رهبری رو گفتیم روی کرد اول خصوصیات و صفات رهبری بود گفتیم رهبری رهبر محفظ است بر اساس این روی کرد که به قول معروف خصوصیات و صفات درستی داشته باشه یعنی ظاهر برون ریز باشه انسانگره باشه هوش تجاری بالا و هوش هیجانی بالا داشته باشه بیان غصا سخنبری داشته باشه این که تاأثیر زار باشه رو بحث رهبری. تئوری دوم تئوری رفتار رهبری بر اساس تئوری هرسی و بلانچار گفتیم شما استایل رهبریتون بر اساس اینکه چبار رو دارید مدیریت میکنید می کنید میتونه متفاوت باشه میتونونه آمرانه باشه میتونونه پدرانه یا متقاعد کننده باشه میتونونه مشارکتی باشه یا تفیض اختیاری باشه و روزگار رهبری اقتضایی که خدماتون را از کردم گفتم سه عمل بر اساس این تئوری تاثیرگذاره برای اینکه شما رهبر موفقی باشید رفتار، و شخصیت رهبر، درسته، میزان تمایل و توان پیروان و عوامل مربوط به موقعیت و شرایط. در اساس دیدگاهی که رهبر موفق در سازمان رهبری است که. سازمانی ساختارش سازمانی داشته باشه رابطه رهبر با کارمند این که آقا اون رهبر کارمند رو استخدام کرده ارتباط فامیلی و دوستی و آشنایی دارن میدون اینا گذاره و میزان قدرت رهبر بر اساس دیدگاه لیکر میتونه تاثیر بر روی رهبری شه کنم شما همون آره آره نه نه نه نه نه نه هرسی و بلانچارت رو چارت رفتاریه. بله. این دویشاد اختیزایی اصلا فرق میکنه دوستان. اسم دیگه هم بود تو دیتکا ما میبینیم. اسم دیگه حالا استاپه. تام این اینه. تئوریش اسمش تئوری هرسی و بلانچارت ولی آقای نیکرد گفته این استایل های رهبری در ارتباط با تئوری هرسی و بلانچارت در نظر بگیر. <تصفيق> یه رو رهبری اینی که خودش پایی کار بشه آه خب بذار الان من تکمیل میکنم صحبت تو یه سرعت چند دقیقه داشته باشی فقط من اگر این کارش امروز تا ساعت دو میتونیم بریم نیم ساعت اضافه تر دیگه و... نیم ساعت جلسه پیش رودتر کردیم این جلسه دو آه. خب یه چکلیستی رو من اینجا گذاشتم، این چکلیست رو توی پکیجتون هم هست متوجهی سوالی که شما کردی، شما بر اساس این چک لیست میتونید ثبوت توان یا موقعیت رهبری افراد در سطح سازمانت گیری بکنید که ببینید آقا این اصلا بیشتر مدیرن یا رهبرن یا رهبر موفق هستن یا نیستن نقاط ضعف رو بر اساس این چک لیست مشخص بکنید و نسبت به تعلیمش اقدام میکنه. خب؟ جسارت داشتن و دیگران, دیگران جا؟ جسارت و دیگران, آره، آره. دیگران آره، آره آره، آره، آره حالا من توضیح میدم، یه چند این استراد بکنیم چکلیست رو من توضیح الان برکسیم این آسراعات نه، نمیتا فارسی فایلشو شب بمونید یه بار <تصفيق>